بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد برين بأبيوت شيخ حافظ حكمي قال رحمه الله إذا أبحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فيا سرعة انقطاع وصالها حد قد ما أز نعمته إلهي در اختيار من بوش أز دنيا وابستگی و تعلق خاطری که در دل ما خواهد اومد بیشتره. بهترین ماشین اون رو داری. آرزو هم داشتی فلان ماشین الله بهت بده. کمال درسته. رسیدیم اون ماشین. فکر میکنی که با داشتن بهترین ماشین یک غمی از دوشت برداشته میشه. مردم بهت احترام میذارن. نه فلانی مایه داره، پول داره. با یک برخورد دیگری با تعامل میکنن. والله این کمال نیست. چرا کمال نیست؟ شما در نظر بگیرید امروزه کسی یک ماشین گران قیمت داشته باشه. اون شخصی که تو خیابون با ماشین مدل پای میره در نظر بگیرید و اون شخصی که با ماشین مدل بالا کدوم یک غم و اندوهش تو این دو تا ماشین بیشتره که تصادف بکنه نکنه بخوره نخوره، تو خصوصا تو شلوغی، تو سرعت کدوم یک هرشش به مالش بیشتره؟ اون کسی که ماشینش مدلش پایین یا بالاست؟ اون که مدلش بالاست. اگر خورد، ضررش میلیاردیه، میلیونیه. اما این که مدلش پایین چیه؟ نه، چند صد هزار مشکلش حل میشه. درسته؟ خراب شد که شد، زد که زد. اینه خیالش هم نیست. ولی اون که پشت ماشینی سیستم بالا نشسته، حواسش جمع چپ، راست که بخوره نخوره، نزنه، ن... نبرن، ندوزدن. الان دیگه طوری شده که طرف ماشینشو جرئت نداره سر خیابون بذاره خصوصا خیابون شروع آینشو از یه طرفی کندن تایراشو از یه طرف زاپاس نیست باتری نیست از این طرف تو بلند کرده از اون طرف چرخای ماشینتو دزدیدن چی خوشیه نقصون و کمال وا بدون همیشه اگرم تایرشو نبرن ها. چرخاش نبرن الله برات نگایش داره همین که دلت مشغول این دنیا باشه که از ذکر الله غافل بشی فکرت ذهنت درگیر این دنیا باشه همین در نقصانش کفایته نقص در دینت اومد به خاطر همین دنیا به خاطر همین خونه از عبادتت که برای اون خلقت شدی باید بزنی خونت بزرگه امروز این لام خرابه امروز اون سرویس میاد داشتی خرابه امروز نمیدونی اینجا آب میشه اینجا نمیدونم فلان چه کش بامش بیش برفش هم بیش هر چقدر بیشتر داشته باشی هم مغمت و مشغولیتت بیشتره بیشتر باید از اون عبادت وعدهت بزنی پس فکر نکن که با داشتن اون مال دنیا خوشبخت میشی و این راه مواصله غبیون هرچقدر انسان تمع داشته باشه در این دنیا چشم دنیا داشته باشه تمع در این دنیا مندگاری در این دنیا داشته باشه مجرد یک خوابه میگه اون کسی که تمع در این دنیا داره بدون که غبی یعنی نادان و جاهله بدون دیوانه است اون کسی که تمع در مداومت و سمرار خوشی دنیا داره و انرا رام وصلها غبیون یعنی این چیز را ما من دیگه میبینیم دیگه دوست داره که پایدار این ها رو داشته باشه اون کسی که اینچینین حسی در او هست تمعکاره این تمعکار از دیدگاه قرآنی از دیدگاه الهی این چون به اون مالی که فنا میشه نابود میشه دل این شخص عاقل نیست اگر عقل عقلو خرد داشت به فکر کجا بود؟ اندوخته اخرتش نه این دنیا چون این دنیا رفتنیه هم خودش میره هم مالش میره همین دنیا فنا میشه هم خودش فنا میشه هر چقدر اندوخته بخواد داشته باشه نادان جاهل اون کسی که به فکر اندوخته این دنیاست فقط میخواد این دنیا رو اندوخته داشته باشه خرد نداره این عقل نداره چه عقلیه به نظرش؟ شما الکییسو من دان نفسه هر چکه از باب حدیث نمیگم حدیث ثابت نیست مرفوعش ثابت نیست همیشه در خطبه خونده میشه زیرک دانا اون کسی که عمل عملش به خاطر آخرتشه الکیس من دانا نفسه اون کسی که زیرک اون کسی که دین و حساب کتاب اعمال خودش رو میکنه و همینا لما بعد الموت عملش به خاطر بعد از مرگشه چون میدونه این دنیا رفتنیه مؤمن باید اینطوری باشه به فکر اندوخته آخرتش من از این دنیا با خودم چی خواهم برد چی با من خواهد من. اون دنیا سرای جاودانه است من در اون دنیا چی خواهم داشت؟ نه در این دنیا، ولد صالحون يدعو فرزندی دارم بعد از من دعایی برام بکنه. علمی منتفع به علمی دارم که ازش مردم نفعی ببرم یا صدقه جاریه‌ای دارم که اون صدقه سبب بشه که ترازوی اعمالم سنگین بشه در روز آخرت. این عمله به اون چیزی که باقی خواهد موند. ان اف حکت قليلا ابكت كثيرا. هر چقدر بیشتر خوشحال بشی، بیشتر از این نعمت های دنیاوی داشته باشی بدون که در مقابلش حساب و کتابت سنگین تره اون کسی که منده در مقابل اون ثروت و نعمتی که الله بهش داده محاسبش سنگینه فکر نکنید آسونه هر چقدر بیشتر داشته باشی مسئولیت در مقابل اون مالت که بهفقی به نیازمندی دادی یا نداری محاسبت بیشتره؟ چرا چشمندوختی به اون ثروتی که فردا و بال گردنت بشه محاسبت را سنگین بکنه؟ طالب علم ال نباد چش به مال دنیا و تمع در مال دنیا داشته باشه. این میگن زهد این کتابی که ما محمد نوشته پادشاهان زمان محمد کیسه کیسه پول میفرستادن طلا میفرادده برای محمد محمد ميداد و قرار ردش میگرد. هم چیکار کنم اين پول اين ثروت اين مال برش می گردون راضی به اين مالی که بهش میفرستادن. ردش می‌گرد. میخوای چیکارش بکنی؟ واللهی از این پول‌ها جز خسران ندیدید، جز خود فروختگی چیز دیگه ندیدی به خاطر اندک مالی خودش که هیچ خانواده‌اش و دینش و دیانتش میکرشه چنانچه چه راست از نشانای قیامت یاد میکنه یوم سيرجل مؤمنه و یصبح کافره و یصبح مؤمنه و یوم سی کافره. یبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. یبيع دينه بعرض عرض مال اندک مالی دینش رو می‌فروشه. خاطر مال یبيع یا بیع و دینه دینش همیفروشی کم دیدیم از ملاش بگیر، از دلاش بگیر چه از اون قاجارقتش، و چه از اون ملایی که بر سر من بره دارم میگم چه از اون شیخ، چه از اون عالمش زعفی ایمانه یک جاهایی سبب میشه که اون شخص در دین فروشی بیفته نه خود فروشی در دین فروشی بیفته تم به ذلت بده چطور تم به ذلت بده یه کار میخواد بکنه چیکار کار میکنه مثلا؟ اگر ملامتی جز این یک ها در پرونده اعمالشون نبود که این منبر منبر نبوت نیست کفایت میکنه چقدر از احادیث رسول الله بر سر این منبر خوندن رسول الله خود باهاش موعظه بود یادی از جهنم یادی از آخرت سرزنش در مقابل گناهی گناهگاری چقدر از این ها امروز خطبه هاشون موعظه هست خطبه هاشون دنیا گران شد ارزون شد این رفت اون اومد اگر گفتم در پروندهشون جز این نقص نبود این عیب نبود همین کفایت می‌کنه همین که از وحی الهی به مردم نمیگن ملا دهانشو بسته میترسه بگه به مردم موسیقی حرام میگه نه اگه من بگم میگن تو تونروی اون تاجر از من زده میشه میترسه بگه وا حجاب ای زن مواظب خود باش اس حجاب کسی نمیگه نه این تندرویه مردم زده میشن دانشجوها مرد بازن صحبت نکنه هم جوار نشه هم نشین نشه خلوت نه امروز الان دنیای مدرنیتی است الان دانشگاه است باید بغل هم بشینن میگه میشه این خلاف تمدن این خلاف مدنیته این خلاف فلانه فرهنگ پس چطور دانش یاد بگیرن پس چطور اهل یاد بگیرن شما دنبال عقب افتادگی و و و گفتم اگر همین عیب کتمان وحی بود در اونها همین کفایت میکرد خیلی هم نمیگن به مردم و توی هم که به مردم میگی تو را بدبی میکنن پیش مردم میگن این تندروه، این سلفیه، این نمیدونم علانی و بلانیه تخریبت میکنن تا مردم هر رو نشنوند فاسأل ربی ان يحول بحوله و قوته بینی و بین اغتیالها میگن از الله میخوام بین من و این دنیا اینی حول بحوله و قوته بحول قوی خودش با توان خودش با قوت خودش الله متعال مرا از از فریب دنیا نجات بده مرا از این ربود شدن دنیا از این دنیاوی شدن از الله متعال میخوام نجات بده ای طالب علم از الله بخواه که الله تو را از اسارت این دنیا نجات بده از دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم این بود سبحان الله یعنی این عبیات إنكار الزعاير أرسل گرفته شده. اللهم إن عاوز بك من البخل والجب وعاوز بك من الجُب وعاوز من أن أردة إلى أرض للعمر وعاوز بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. مدار تحياتي مداري من فتنة المحيا والممات. فتنة سي. الدنيا أسي. بار الله بتؤسف فتنة هاي الدنيا في كم مرة ما فتون من فقط بمال فلاني، سرقة فلاني، موبايل فلاني، ماشين فلاني، موتور فلاني، خونية فلاني. الله ما را نجات بده جز مفتونینی این دنیا قرار نده جز اون فریب پردگان قرار نده بار الله من را نجات بده داره؟ این رو به همون یاد میده طالب علم یک اصلخهی که همیشه تو نیازمند این عبودیت و بندگیت در مقابر الله همیشه این دست گدایی به الله بلند باشه همیشه دستت را سوی الله بلند کن عزت در اینه اصل کلمه عبادت در همین یعنی در اثبات بندگیت. یاد بگیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم اینی اعوذ بك من فتنة الدنيا ند دنیاست فریب دنیاست بار الله مرا نجات بده از این دنیا وقتی که در تحیات می اللهم این اعوذ که من عذاب القبر میگی از دل جان بگو نه اینکه سرزبونی فقط رد بشی که فقط یک واجبی از واجبات نماز انجام بدی السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحم نه از دل از الله بخواه نه اینکه اینجا سر تحیات میخوای اونجا به خون برادر آتش nei به خاطر موبایل و به خاطر ماشین و به خاطر فلان به خاطر زمین و به خاطر یک وجب دنیا اون دعایی که گفتم جامع‌تر از این دایی هست که رسول معمولا در مجالس خودش چنان چه صحابی می‌گوید تکرار میکرد رسول الله صلی الله علیه و در مجلسی که نشد با حو یارانش سنتای متروکی است که الله به اون پایداری و استقامت بر اون عطا کنه در اون مجلسش این چنین دعا میکرد اللهم اقسم لنا من خشیتک ما يحول به بیننا و بین معاصیك به ما ترسی از خودت بده بار الها که بین ما و معصیتت فاصله بندازه نزدیک اون معصیتت نشه بار و من طاعت ما تبلغ به جنته بار الله به ما توفیق طاعت و عبادتی بده که ما را به بهشتت برسونه بار الله توفیق عبادتی بده که ما اون طاعت عبادت بهشتی بشی و من اليقين ما تهوونو بهی علینا مصيبات الدنيا به ما یقینی بده که مصیبتهای الدنیا را برامون آسون بکنه حسن زن به الله والله بهترین نجات به از غم مهم و اندوه و متعنا به اساعنا و ابزاراررهبارله خوشی این چشم و این گوشو و توانی که بهمون دادی و معنا با اساعنا و ابسارنا و قوتی نه ما اگه تاددای کهز این بربردگار لذت ببریم از این چشم و این گوش واجعله الوارث منا واجعله این و اجعله هولوواری من نه این زمین رو کجا بر میگرده به این احمت ها از چشم از گوش بعضا گفتن منظور چیزی که از منظور اون اعمالی که از ما. باقی مونده. بس دیگر لما گفتن که نه منظور این که این نعمت ها مداوم باشه باره از ما نگیر این چشم، این گوش، این نیرو. باره الله تا مرگمون داشته باشیم نیازمند کسی نباشیم. چنانچه در حدیث قبلی داشتیم که رسول اعظم میگه اللهم بکن ان اعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر به سنه و را نرسیم اونجایی که محتاج فرزند و کسی باشیم وجعل ثارنا علی من ظلمنا. باره الله ثارم انتقام. وجعل ثارنا علی من اگر ما انتقام گرفتیم انتقاممون فقط در حق اون کسی باشه که بهمون ظلم کرده دیگه متعدی به کسی دیگر نشه به الله حالا میاد حدیث اون صحابی که اومد گلایه‌ای شکوهی داشت از بردگان خودش خواهد اومد من نظر اساس هم گفت که اونا ظلمی میکنن منم میزنمشون آیا محاسبه میشم در مقابل این کارم الان میاد حدیثش الله. انسان نباید اگر انتقام میگیره سن بالفرض یک کسی بهت ظلم کرده شده بین قوم قبیله ها پیش میاد یکی از این کشته شده میره سد نفر از اون قبیله ده نفر از اون قبیله دیگری میکشه. این سر و این انتقام به جاش نیست به نحق در مقابلش مسئولی بار اگر انتقامی بر من نوشتی که من بگیرم در حد اون ظلمی که به من شده نبیشتر از اون. من ظالم نشم انجا تو ظالم شدي وانصرنا على من عادنا بار الله بار ونفسات بده در مقابله اونهاي كي به تعدي مكنن ظلم يكونن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا بار الله مصيبته ما در دين ما قرار نده ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا حم غم رو دنيا قرار نده ولا تصلت علينا من لا يرحمنا بار الله برما چيره نكن اون شخصي بما به ما رحم از رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر حديثة سعية مسلمة اللهم أصلح لي ديني بار الله دين أمر إصلاح دين باشي إصلاح مشه ألا لله الدين الخالص أبل إخلاص خالسان الله رب تک یاد کردن به تنهایی یاد کردن و با پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلام که دار از دستورات الله و رسولش و عدم اطاعت و فرمانبری از اونها عقوبتی سخت خواهیم داشت الله جل شأنه میگوید و من یعص الله و رسوله فانا له نار جهنم خالدین فيها ابدا و من یعص الله و رسوله کاسیگ از دستور الهی و دستور پیغمبرش رسول الله صلی الله علیه و سرپیچی و عصیان میکنه در مقابلش عقوبتی سخت در جهنم خواهد داشت پس عسمت و نجات ما نجاتمون از عذاب الهی در پیروی از الله و رسولش با اخلاص این دو رکن شرط نجات شرط عسمت به یاد میده که ما کم میاریم هم در اخلاص هم در پیروی از رسول الله صلی الله علیه پس از الله ای طالب علم ای بنده سعانات بجوی یاری به طلب بار کمکم کن در دینم تا اینکه دینم مایه نجاتم بشه از فتنه دنیا مایه عصمتم بشه از فریب دنیا از فتنه دنیا اللهم صلح لی دینی الذي هو عصمه امری نجاتم بار در دینم این دینم بار اصلاح کن مبتدع و گمراه و عصیانکار و گناهکار نباشم بار اهل شرک و اهل ریا و چقدر از ریاکاران داریم چقدر از جاه داریم هم معصوم نیست، مولا است، شیخ عالمه، سنت را میاد، جلوت طلاب میخونه فقط به خاطر اینکه طلاب ببینن آه فلان شیخ داره نما سنت میکنه. هدفش مراعاته. من سمع, سمع، الله به، هر کسی هدفش سمع و ریا باشه، هدفش ریاکاری باشه، روز قیامت رسوا میشه. هدفت در عبادتت ای بنده ریا نباشه، هدفت رضای الهی باشه، برای الله انجام بده. بله بعضی از طلاب که تازه واردن تازه وارد علوم شرعی شدن میان مثلا میگن مثلا بفرمایید من خودم اینجا اومدم مسافرم آه شیخ فلانی سنت نخون خب چرا سنت نخون چون مسافر سنت نداره حالا من بیام از باب ریاکاری به خاطر که طلاب چیزی ندانم بیام سنت بخونم این چیه عین ریا چون من به خاطر طلاب اومدم درک که از سنت نافله خوندم در صورتی که اینجا در شهر و در سنت از من ساقط بود از هدیه روش رسول این بود که در سفر نمازه قبلی و بعدی نخونه از قبلیه صبح و نماز بترف اینو باید درش دقت بکنیم که دینمون مایه نجاتمون باشه و اصلح لی دنیای الیتی فيها معاشی بار این دنیای منو اصلاح کن که محتاج کسی نشم گدای کسی نشم نیازمندی کسی نشم بار راه منو نیازمند خودت قرار ده و اصلح لی اخرتی الیتی فيها معادی بار الها آخرتم را اصلاح کن با توفیق به عمل صالح توفیق عملنی بار با الله بهم عطا کند تا اخراتم معادم اصلاح بشه وجعل الحیات الحیاته زیاده ای في كل خیر و الحیات زیاده ای سبب سبب زیاده ای فی كل خیر بار الله این دنیا سببی قرار بده که من اعمال نیکم زیاد بشه نه تباهکاریم نه گناهکاریم نه گرهام ابزوده بشه نه اینکه من بهترین موبایل و بهترین تلفن و بهترین کامپیوتر و بهترین تلویزیون و محاوره داشته باشم که با اون نگاه نامحرم کنم چشمم به این نامحرم و اون نامحرم بیفته این از زیاد این زیادی در دنیا جز سبهکاری چیزی دیگه به بار نیورد این نعمت این مال حسرت در روز قیامت این ندامت و پشیمانیه وقتی که این مالت سبب گناهت شد که بری با نامحرمی حرف بزنی سخن بگوی در سخن را باز بکنی در نگاهت را باز بکنی این العین تزنی وزناها النظر وان السمع تزنی وزناها السمع چی زنا کنه و زناش دیدن نامحرمه گوشم زنا میکنه شینیدن نام نامحرمه نام باید بر حذر این مال فزونی در گناه و تبهکاری شده نگر طاعت و عبادت الهی از الله بقاییم اگر مالی بهمون بده اون مال نعمت نشه نعمت بشه وسیلی بر طاعت بشه نگر عسیان و گناه و اجعل الموت راحتلی من کل شر بار الله مرگم را راحتی از هر شری قرار بده بار الله مرگم را از این دنیا قرار بده از دنیا نه اینکه انسان طلب مرگ بکنه از الله به خاطر اینکه بار سختی‌هاش بر دوش سنگینی میکنه مؤمن چنین نیست مومن تقاضای مرگ را از الله نمیکنه کنه به خاطر سختی‌های دنیا مومن اگر مرگی از الله میخواهد چون مشتاق دیدار الهی است حالا اینو ان شاء باز سرش قایم کرد و یا طالب دنیا الدنیئه جاهدا الا اطلب سواها انها لا وفا لها فکم قد رأینا من حريص و مشفق عليها، فلم یظفر بها این ينالها. فيا فیا طالب الدنیا ای طالب علن طالب دنیا ای طالب دنیا اون که غرقی در جماوری دنیا ای کسی که دنبال این دنيا دنی و پسی دنیا گفته شده از دنی اومده اون دنی از دنوه از پایینی و پسیه ای که برده این دنیایی ای که برده این آهنی این مالی این ثروت و این طلا و این زیورالاتی کوشش میکنی برای رسیدن به دنیا به دنیای پست این راه راه نادرستیه دنبال راه دیگری باش الا تطلب سواها دنبال چیزی دیگری باش دنبال چیزی به درد بخوری باش اینا به درد بخور نیستن انها لا وفاء والله وفادار نیستن وفایی در این مال دنیا نیست ما دو نوع شهوت داریم دو نوع تمع داریم یک تمع بر اینکه علمی الله به بده که با اون حسناتمون بیشتر کنیم یه نوع همه غمه که طالب علم داره مؤمن مخلص داره یک تمعی مزمومه دو تمع یک تمعی مزموم، یکی ممدونه یکی خوبی، یکی بده یکی هم از دنیا سیر نمیشه هم غم غمه شهوتش فقط دنیا سی یکی علمه تمعش علمي يكي تمعش دنياس جنالك در رواية زمن الماس من همان لا يشبعان دوتا هسن تمعكار كثير نمشان يكي بخاطر آخراتش طالب علمي صاحب العلمي وصاحب الدنيا ولا يسويا ان دوتا مثل هم هل يسوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون مثل همان بنظر شما ما والله ان كسي دنبال علم شرعيه ان كسي ك دنبال النجاة شهد. به مقصدش، به آخرتش نگاه میکنه مثل اون طالب دنیا نیست که فقط به این دنیا نگاه میکنه اون کسی که دگاه دنیا میکنه نگاه نگاهش کوتاه نظریه فقط چشم دوخته به این زیورالاتی که در این دنیا هست که وفادار نیست اینها لا وفالها فکم قد رأینا من حریصین و مشفق علیه چقد دیدیم از اونایی که حریص بودن تمع این مال دنیا رو داشتن که به دست بیارن فلم یغفر بیها ان ینا لها این قد و این قد زحمت کشید و نخابید آخرش از این دنیا رفت چیزی هم به دست نیبود یا هم اگر به دست رو با خودشم ن لقد جاء في آية الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بالضرب مثالها وفي آية عمران وفي سورة فاطري وفي غافر قد جاءت بيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها بعض خندل لاختيارها بعض خندل لاعتزالها لقد جاء في آية الحديد ويونس تذكره هشداري الله دار سورة حديد دار سورة يوнос دار سورة كهف تذكر بهم داد دار موردة الدنيا ما را بر حذرب دونسه الله از دنیا که فری إيضاح بالضرب مثالها وفي آل عمران وفي سورة فاطر فانش سورة وفي غافر ششوميش قد جاءت بيان حالها وفي سورة الأحقاف هفتمي أعظم واعب الله مر موعز ده موعظه رب خليل كمعزه درسورة دار درسورة يونس تأخر آخر أما سورة حديد اعلم أنم الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حقاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياه الدنيا زندگي دنيا متاعيه كالاي فريب دهنده وفاي نداره لا وفاله اين دنيا وفادار نيست تر از خدا غافل میکنه تر فریب میده اعلم انم الحياه الدنيا بدون زندگي دنيا لعب بازیه وله بیهودگریه بیهودشنویه بیهودبازیه بیهودگی فقط وقت تلف کردن هدف نداره همینطوری تو اینترنت داره میچرخه لحو و زینت زینته دنبال فقط بهترین ماشین و بهترین کونه و بهترین زرق و برق دنیاست و تفاقر فخف وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال هنا هاي مذمومه صفخ فروشی بکنه به فرزندش به مالش کماثل غیث مثالش چیه کماثل غیث اعجب الكفار دوتا قسمت آیه قسمت, هایه. قسمت اول میگه زندگی دنیا اینه و اون کسی که به این زندگی همیت میده و چش بندوخته که یه کافره مؤمن اینطوری نیست یعنی یعنی مؤمن اگر این چیزها در تو اومد فخ فروشی در تو اومد حب دنیا در تو اومد از کفار در تو اومده که مثلی غیف اعجب الگفار نباتو غیث بارانه مثل اون بارانی که میباره ثم یهیج و فتراه و مصفره سپس اون باغ و بستان بعد از اون بارندگی خشک میشن ثم یکون و حطامه بعد از اون خشکی هم چی میشن؟ کاه میشن خرد و له ورده میشن فوچ میشن نابود میشن دلش خوش اون به با اون بارش باران اون باران که میباره باد سوزانی را الله میفذسه اون باغ بستان را نابود میکنه میگه این دنیاست ای مومن این دنیاست تو تمع داری در این باران که اون برویه و برایت سود و محصولی داشته باشه ولی که اون محصولت پوچ میشه ملخی میاد کل محصولت را نابود میکنه آفتی میاد و فی الاخره عذاب شدید در مقابل اون مال در مقابل اون کشزار عذابی در و حساب سختیه هر چقدر بیشتر داشته باشی حسابت سختره و اما مؤمنش مغفرت من الله و رضوان اما مؤمن در مقابل اون مال مغفرت و رضایت الهی خواهد داشت و مال حیات دنیا ایلا متاع الغرور بدانید این دنیا فریب دهنده است تو را فریب ندهد مثل اون کافری که فریب فریبته این دنیا شده در سوره الله جل انما مثل الحياة الدنيا كما إن الله من السماء بازم مثل آب باران کی میبارد مثال میزنه فاختلط بهی نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام يا هانی قنون على فو درختان قنون بسبابه بارش باران میرویم بر وین زمین حتى اذا آخذت الأرض زخرفها و وظن و اهلها أنهم قادران عليها اتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس وقتی که اون زمین زیبا میشه وقتی که اون گلها و اون نباتهای گوناگون قنچه های گوناگون بر روی این زمین سبز میشن شکوفا میشن الله شب یا روزش آفتی میبرسه با اون آفت با اون مصیبت الله اون کشزارو اون سر سبزی ها رو نابود میکنه فچه حصیدن که ان تغن بن مثل که اصلا نبوده درو شده اصلا نابود شده. مثال ملق دیری دیگه وقتی که حال یک باغ بشن سبزی ها رو نابود میکنن کهعللیکن نفصل و ایاطتی لقام این اتفكرون اونایی که فکر میزنن فکر بزنن. سریکه وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء بازا مثال آب بارانی که از آسمان میبارد باراد بین نبات الارض اختلاط همون گوناگونی اون علفها و اون جوانه هایی که از درختان بر اون زمین می بینی هشی من تذروه الرياح اون علف که رویده شده رو ببینید بعد از اون باد سوزان چطور خشک میشن پراکنده میشن تدروح و ریاح که راحت با بادی که میاد پراکنده میشن و که ان الله علیه کل شیع مختدره درس بگیرید درس دنیا اینه این دنیا مثل اون مزرعه کشزاری که با اون بارش باران رویده شده سپس نابود شد این دنیا دنیا نابودیست فناست وفادار نیست برات نم الا انك انرى در راه الله خرجش كني و وسيله اي براي اطاعت قرار بيدي اما در آل عمران و فاطر و غافر آل عمران و ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور دنیا جز کالایی که فریب دهنده از چیزی گیری نیست سوره فاطر یا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغررنكم الحياة الدنيا دنیا شما فريب فریب نده بعدي الله حق ولا يغررنكم بالله الغرور ما هو الشيطان و شيطانش، غير الشيطان ولا يغررنك شمارة فريب ندع بالله الغرور يعني شمارة از الله دور نكون نظارت مال دنیا نظارت سربات نظارت دوس نظارت شيطان شمارة از الله دور بكون در سورة غافر الله جل شأنه ميقو يا قومي از ان مؤمن آل عمران ميقو يات ناقل ميكون يا قومي انما هذه الحياة الدنيا متاع وإن ان هي دار القرار انجا يكي جاو فدا نهس اي مؤمن و ان كلايس كاسبين قهاد راف يك خشيس يك كلايس دلت ربعون خوش نكون اي مؤمن اما در سوري احقاف اعظم واعض كي بيهترينو بزرگترين موعزات برئين كسيكي الله بصيرتش را قلب بصيرتش را رو الله روشان قرد كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرون ما يعدون اون وقتی كبعده الله رمید بنا لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. اون لحظة و روزي كبعده الله رمید بنا و اون وقتی يقين مرسان كي يك ساعت بيش در این دنیا نبودن إلا ساعة من النهار. بلاغ بلاغيس بشمع بشر. بعدها لا هي حقه والله الدنيا يكساعة بشنيس دلت ربين يكساعة خشنكو ني مؤمن دلت خشنبش بين يكساعة الدنيا كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون عبراتي بولا ان انكسيك فاسقه فاجره هلاك مشي والله هلاك مشه إن الدنيا حلوة خاضرة دنيا شيرينه زيباس وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون رسلهم فيرميان شمرا الله تزشت در این دنیا که ببینه شما چطور عمل میکنید فتقوا الدنيا فتقوا الدنيا, الدنيا. برحذر باشید از این دنیا تقوای الهی داشته باشید در این دنیا وتقوا النساء برحذر باشید از زنا فتنه زنان قمرا نکنند فان اول فتنه بني اسرائیل كانت في النساء اول فتنه بني اسرائیل در زنا بود برحذر باشید فریب نخورید دنیا زوالش نابودیش سریعه سه تا دیدگاه هر مؤمنی باید داشته باشه نسبت به این دنیا اولش این دنیا سری رفتنیه از این آیات برداشت کردیم دنیا درسته همونطور که معجزه سوره احقاف بود سرای جاودانه کجاست آخرت. دار القرار اما اینجا دنیا چیه دار زواله سرای زوال نابودی کانه لم یلبثو الا ساعه یک ساعته فقط زوال نابودی اندک زمانی فقط پیش در این دنیا نیست ای مؤمن نگاهات به این دنیا این همونطور که رسول مثل اون شخصی که زیر سایه درختی صراحتی میکنه و میره یک بره زمانی یک اندک زمانی بیشتر در این دنیا نیست بر حضر باش از اندک زمان فریبت نده گفتم تذکر الله در اون آیاتی که اشاره شد زیاده به این قضیه قبل از اینکه به دومی دو برم حدیثی را بگم اینجا که مناسبت داره با دنیا و نگاهی که باید مؤمن به با دنیا داشته باشه حدیث با ابن کعبه در مسند احمد سنن شمسعی قساش اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله به صحابی میگه یا ضحاک ما طعام قزاتیه قال یا رسول اللحم واللبن لبنیات شیر ماست به گوشت قال ثم يصير الى ماذا؟ این گوشتت چی میشه بعد کسی اینجا هست که نمیدونه نمیدونید چی میشی قال ثم يصير الى ماذا؟ قال الى ما قد علمت هم چیزی که خود میدونی یا رسول الله همون فرقی نمیکنه مال هر کسی یکیه اون چیزی که خورد چی میره میاد بعد از اون دیگه مشخص قال رسول الله میفرما نه اینجا نکته هست ای که در این حدیثه قال فان الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن ادم مثلا للدنيا الله اونو مثال میزنه اون پس مونده قضایی که از تو صبحی میمونه باز از اون گوشتی که خورده اون دنیاته اون ماشینی که چش دوخته عجب ماشین عجب خونه عجب ثروت عجب فلان اون عجبه چیه پس مونده همون گوشتی که خوردی غیر از اینه. حرف کیه رسول الله صلی الله علیه سخنش بر سر و چشم دنیا برای مومنی اگر اینو عزیز دونستی با ارزش دونستی بدان که تو خردی الله بهت نداده عقلی که اون نعمتی بشه برای تو که نجاتت بده از عذاب الهی اون لیاقت و اون شرف که باید داشته باشی اون لیاقت رو تو نداری تو خودت رو از اون محروم ساختی با وابستگی و دلبستگی به این پس ماندهی که همه ازش نفرد داری خودشو کسیف میکنه دست پدر بده بگو بشورش اون مادر حالا روی خودش میذاره میگه مه اون رحمتش لطفش مهربانیش روش غلبه میکنه ولی اون پدره حالا دستش بده میگه برو تمیزش کن مال بچه خودش دلش نمیاد تمیزش کنه این دنیاست همون چیزی که توش دلبستی همون چیزی که سلام رحمت را با اون قطع کردی همون چیزی که به خونه برادرت تشنهی همون چیزی که در دادگاه‌ها این دادگاه و اون دادگاه پرونده سازی میکنی همونه نمیگم از حق کتابی ها. ولی نه با قطع رحم نه با دشمنی و کدورت و با اسلحه کشیدن و با زرب و شد. دوم اینی که بعد از پایان دنیا سرای دیگریست بدون شد هر مؤمنی به این یقین داره که سرایی که خواهد اومد سرای جابدان است و خیر و ابقا اون سرایی خواهد بود هم بهتره هم باقیست اما دنیا رفته نیست والله ما الدنيا في الآخرة السلسة سمي فرما الحديث والله ما الدنيا أسباب مدة زمانش شميكي والله ما الدنيا في الآخرة يعني زمان ومدة الدنيا در مقابل آخرات يعني كنين نيس مقر مثله إلا مثله ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر به بمته آب آبو در نظر بگیرید میگه رسالت اصلا میگه زمانی که شما در این دنیایید به نسبت آخرت دست توی آب آبو کن بیرون بیاد چقدر آب به دستت چسبیده اون اندک آب این دنیاست این مدت زمانی که شما در این دنیایید نمیخواید تو آب بذاری بره خاک بیرون دست تو بزن نگاه کن این دنیاست همه مدت زمان این مدت زمانی که ما الله بهمون داده در این دنیا ولی آخرت قابل قیاس با این اندک خاتی ای نیست که به دستمون چسبیده اونجا داره بقاست سرای جاودانه است سرای پایداریش که فنا نمیشه سوم از این درس که از این آیات میگیریم اینی که دنیا رفتنی آخرت جاودانه و این که تلاش برای اون سرای جاودانه ما را از اون نصیب دنیا محروم نمیکنه اگر جن و انس جنب بشن تو را محروم بسازن از روزی که الله برات نمیشه میدونن حدیث داریم دیگه اگر جن و انس جنب بشن بهت ضرری بر رسول نمیتونن بهت نفعی بر الله نه نوشته نمیتونه الله جن انس جنب می رزقت الله نوشته رزقت از عمرت والله ترا نمیتونم بکشن قبل از موعدت ترا نمیتونم بکشن قبل از موعدت والله بیا المره ببشان اون وقتی که الله نوشته روزیمون کرده که ببینیم همون روز می‌بینیم والله کسی نمیتونه اون قدری که الله عمرت نوشته اون عمره رو ازت اون عمره رو کم بکنه اون ماله را کم بکنه والله چط مایی که اینجا بودیم این هستیم و چون کسی که در بهترین کشورهای دنیا زندگی میکنه والله همون قدری که الله نبشه که اینجا هم بود همون قدر لا بهش میداد چی فرقی میکنه چه تفاوتی داره نونش از گندمه نون منم از گندمه جایی یه چیزی ما داریم ارزشمنده ولی ارزشش رو نمیفهمی اون فقیر حسرت زندگی ثروتمند میخوره که اسیر این بیمارستان و اون بیمارستانم برای درمان و علاج موبد نعمتایی که الله به من داده ببینیم لمسش بکنیم قدرش رو بدونیم قال رحمه الله لقد نظر قوم بعين بصیره اليها فلم تغررهم باحتیالها اولئک اهل الله حقا وحزبه لهم جنت الفردوس ارثا ويا لها لقد نظر قوم این قولوها ابا اصحاب اليمين دید نگاهشون با بصیرت بود به فلم تغررهم فریبشون نداد این مال دنیا با احتیالها و با اختیالها هر دوتا خونده شده احتیال با نيرنگ و حیله این دنیا فریبشون نداد با نيرنگ و حیله و با اختیالها با اون خویالا و زینت و زخرفاش دنیا فریبشون نداد با اون زخرفاش با اون زیباییهاش با اون خوشیهاش لقد نظر قوم بعین بصیره این بصیرته رسول با اون صحابی گفت نگاه پس مانده کن کن قضایی که میشه؟ دنیاست این بصیرت نگاه کردن می دنیاست اولئک اهل الله حقا کسی کی انجینین دیدش بود انجینین به این دنیا نگاه کرد اولئک اهل الله حقا اینا اهل خدان حزب خدان الا این حزب الله همو مفلحون سجارا پیروز فلاح رستگاری در چیه حزب الله بشی چطور حزب الله شدن اینی که فری به دنیا ناخورید اولئک اهل الله حقا وحزبه لهم جنت الفردوس ارثا اون ارثی که میبرن چیه بهشت فردوس و یا لها چه سرایم فردوس در اون فردوسی که از اون چیزی که انسان بخواهد الله بهش میده از اون چیزایی که انسان لذت ببره با خوردنش آشامیدنش و در اون چیزهایی هستن به هم خطور نکفیم ملاعین الرات ولا اذن سمعت نقوش چیه و چش دیده دی. اهل خدا اهل الله اهل عبادتن اهل رضایت الهین اهل قرآن، اهل سنت، اهل سنت بودن با ادعا نیست اشعری ماتریدی معتزلی هر فرقی هر گروهی دارم دارم حساب نیست این ادعا کردن که من دارم دارم چی داری عملت چیه چقدر از الله میترسی چقدر لقمه حلاله اون مهمه خیلی ها دارن از چه راهی دارن علامت سؤاله اهل سنت بودن به نیست که من ادعا کنم من سلیم. چقدر پایبند سنت محمدی صلی الله عليه وسلم چقدر رهرو راهشی چقدر پایبندی چقدر پایبند اون نمازشی که رسول الله صلی الله عليه و سلام به هد گفت صلو کما رایتمونی اصلي نماز بخون مثل اون طوری که من دارم نماز میخونم همچنان که من نماز میخونم نه فقط در ارکانش نه فقط در تکبیرة الاحرام که جنگی راه انداختن بعضیا بین حنفی و شافعیش و بین حنبلی و مالکیش نه والله جنگ بر سر این نیست پیروی از رسول صلی الله فقط به این نیست که من بدونم رفع الیدین سنتی یا سنت نیست سنته شکی هم درش نیست که سنته بلیکن این سنت ادا کردن نیاز به تفاخر نداره، فخ فروشی نداره. نیاز به انضباط داره. فقط این نیست که بعد بلد باشی من در تکبیر احرام دست بالا می کنم. بعضیا همینطوری فقط میخوان سر بندازن. دست رو میتوری بالای میندازن و فقط برن به رکوع یا سجودی بالا بیان. بعضیا فقط همین ظاهر رو بلدند. کنید والله امت اصلاح نمیشن مگر اینکه ظاهر اصلاح بشه تا باطن اصلاح بشه. شکی نیست. باید این ظاهر اصلاح بشه باید, باید, باید بندی به سنت بیاد ولی حرف امینه هلا ان فی الجسد مضغه اذا صلحات صلح الجسد متقابله قلب اصلاح بشه ظاهر اصلاحه اصلاح ظاهر شد قلب هم اصلاح میشه نه اینکه من مدعی سنتیت باشم رفعیدین بکنم ولی خشوع در نماز نداشته باشم به درد چی می‌خوره این نماز که نه تدبر داری نه رکوعش نه در سجودش نمیدونی چی خوندی چی گفتی نه الله اکبرت میفهمی نه از سبحان ربیل میفهمی نه از سبحان ربیل عظیمت میفهمی والله نماز خوندم جایی که فرصت نشده در نماز سری نمیگم سوره بعد از فاتحه الرحمن الرحیمم نرسیدم که بخونم بعد از نماز سوال پرسیدم گفتم ای بنده خدا من نرسیدم حتی الرحمن الرحیمم برسد فقط گفتم الحمد لله رب العالمین گفتم من که سبحان الله گفتم این چه سنی بودنه این خشوع در نماز این که ما رایت منی اصلينا ثرين نماز مخن تو رفع يدینش نکن ولیکن لا اقل ظاهر نمازت رو حد اقل درست نگه دار اونچنان که رسول درست نگه می داشت به یا بلال راحت من کون یا بلال روحاتیرا صد نماز بود که بیسته که نشه نه اینکه تمام بشه سر دومبل سر انداختن نه والله نماز رسول اینجوری نبود رسالت نماز مغرب انعام میخون اعراف میخون نمیگم الان طلاب علم و شیوخ و علما بیان انعام بخونن انفال بخونن همون فاتحه شو حدقل بزارن مردم بخونن چه ادعای اهل سنت بودنه سنی ملتزم به سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم سلم اثر ادعای سنت میکنه از این طرف فحاج بدی تهمت میزنه دروغ میگه چه سنیه که دروغ میگه چه سنیه که بذیه فحاشه، دشمن میده والله این بوی از سنت نبارده این نهل سنت بودن این بدعانیست رسول صلی الله علیه وسلم رکوعش همچون قیامش طولانی بود سجودش هم همین تو نه این که فقط گفتم از سر بندازه که سری نمازش تمام بشه نماز باید وسیله باشه که تو الله را جلوه خودت ببینی تو را منزله احسان برسونه ان الصلاه تنه عن الفحشاء والمنكر الله وسیله این ماست فحشا و منکر دور بکنه چقدر از مردم ادعای اهل سنت و میکنن ولی عملشون خلاف اینه عملشون بهتان تهمت تخریب ما اینطوری نباشیم زبان صدقی داشته باشیم و اذا قلت فعدل رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرماند حدیثی ان لله تعالی اهلی من النفس الله کسانی اهلی برای خودش داره اهل ها الله بیان اهل القران هم اهل الله و خاصته اگر میخواهی نزدیک الله باشی سرایت جایگاهت منزلگاهت در فردوس اعلی باشه بس اهل قرآن باش لا يسخر قوم من قوم جزونا باش که مسخره به کسی نمیکنن کسی رو تحقیر نمیکنن غیبت نمیکنن تهمت نمیزنن دروغ نمیدن نمازشو رو درست ادا میکنن رسول الله را الگوی خودشون میگیرن لقد كان لك في رسول الله اسوه حسنه برای شما در رسول الگوی نیست این ارثه این میراث انبیاس ارثا ويا لها وتلك الجنه التي اورثموها بما كنتم تعملون این ارث این بهشت در ازای عملی که ما انجام دادیم نه اون عملی که ادعا کردیم بما كنتم تعملون بهشت در صورتی الله بهت بید میده که تو عملت کردار درست باشه تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون وما لا اليها اخرون لجهلهم انها اصحاب يمين الا اهل اخره أما اهل الدنيا وما لا آخرون اخرون لجهلهم فلما اطمن ارشقتهم نبالها اولئك قوم اثروها فاعقبوا بها الخزي في الاخره وذاقوا وبالها النببي دريا صالحين ابيات ميرا الشافعي شرط رب داشته باشه بین بين این دو هل يسوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل علم وأهل جهل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا الفتنة. خداه خداه. دا دا. وخافوا الفتنة يقولون هذا باندقان زيرك خداه شيار خداه دنيا رطلاق دادا وخاف الفتنة ترسيدنا هاي دنيا فريب دنيا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة فهمنا نقاك هذا جاي منزل مؤمنين نيس جعلوها لجته واتخذوا صالح العمال فيها سفنا دریایی را برای خودشون در نظر گرفتن این دنیا که نجاتشون در اونجا کشتی باشه خصوصا در خواب تعبیر میشه کسی که می‌بینه سوار کشتی کشتی نجاته معمولا دلالت بر این میده که شخص پایبند به سنتی کشتی نجاته پایبندی به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مال الیه اخرون لجهلهم اگه اهل علم بودن که نجات یافتن اما اگر اهل جهل شدن از اون بندگان چیزی جز خسستگی این دنیا چیزی دیگه نخواهند داشت مالله اخرون لجهحلله فل مطئ نوع ارشقت هم نمی وقتی که دللبسته این دنیا شدن نزه های اون دنیا به طرفشون اومد از غم و غصه بخال خودمونتییربارون شدن از غم اندوه به رگ بار بسته شدن با اون غم اندوه سرازیر شد بر اون ها غ اندوه سرازیر میشه رفتن دنبال دنیا ولی دنیا آنها را فریب داد اون لحظه که خواستن خوش باشن با اون دنیا اون دنیا از دستهشون رفت اولا قوم اون ثروه و اون رقب این قوبتشونه این دنیا را ترجیح دادن بر آخرت عقوبتشون همین بود که دوچار خیان بشن و عاقبه بها الخزيه الاخرى الاخره و ذاقوا و با بالا گردنشون شد این مال در آخرت به جای اینکه نجاتشون بشه سبب نجاتشون بشه سبب هلاکشون شد سبب حسرتشون شد الله در قرآن میفرماید من كان یرید العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد برای کسی که بخوام میدیم این دنیا در این دنیا ولی عاقبتش ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا رقبأتت جهنم سأختو صلى الله على محمد وعلى آل محمد